گونه حافظه برتر داشته باشیم؟ اثر پروفسور روبرت توکه ترجمه ساعد زمان با صدای اکرم پریمون تهیه کننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوا با همکاری انتشارات ققنوس حافظه برای هر گونه فعالیت ذهنی ضروریست پاسکال در واقع اگر انسان قدرت زبط و حفظ دانسته ها و به یاد آوردن آنها را در زمان مناسب نداشته باشد تعلیم و تربیت برای او هیچ گونه سودی نخواهد داشت چون هر اندیشه و هر نوع عملی هرچند ساده و معمولی را برای همیشه به فراموشی می سپارد. لذا آموزش نیز بیفایده خواهد بود. در این حالت حتی افکار نیز نمی در ذهن وی شکل بگیرند. زیرا هوش و ذکاوت انسان در طول گذشت زمان تمرین داده شده و رشد می کند. به همین دلیل اعمال وی ضرورتاً به صورت متوالی ایجاد می شود که بدون حافظه اندیشه همراه با هر یک از این اعمال ایجاد شده از بین می ناپلئون ناپل اون نیست که به نظریه پرداز بودن خود می و معتقد بود یک انسان خصوصاً به خاطر کاراییش ارزشمنده است، همواره می گفت یک سر بدون حافظه مانند میدانیست که هیچ گونه نشانه و علامتی در آن نیست. در زندگی روزمره ابزار شناخت عمل کرد و در نتیجه عناصر ارزشمند شخصیت ما به حافظه متکی است به عنوان مثال می‌توان از گسترش و افزایش دانسته ها مهارت قدرت استدلال قنا و تنوع حالات سرعت انتقال زمینه های تصمیم گیری و قابلیت تطبیق با شرایط مختلف را نام برد به طور یقین در آزمونها و امتحاناتی که معمولا به حفظ کردن یک دایره المعارف واقعی نیاز است و در زمینه آموزش، ادبیات، سیاست، صنعت و کلیه اموری که دانسته های قبلی در آنها نقش هدایت ای برای آینده دارد و سرانجام در هنرهای زیبا که سوای توانایی‌های خاص نیازمند فرهنگ عمیقی نیست هست، حافظه همواره ضروری است. به عبارت دیگر، دانش آموزی که خود را برای آزمون یا امتحانی آماده می سازد، استادی که تدریس می کند، نویسنده یا شاعری که موضوعی را در ذهن خود می‌پروراند، تاریخشناس و یا متخصص علومی که باید متون بیشماری را که قبلاً مطالعه طبقه بندی، هماهنگ و ترجمه کرده است به کار برد، سخنرانی که پشت تریبون سر خود را به سوی شنوندگان بالا می گیرد، مهندسی که یک دستگاه مدرن را طراحی می کند، کارمندی که در مشکلات و احتمالات زندگی روزمره گرفتار شده است، معماری که نقشه یک ساختمان وسیع را می کشد، موسیقیدانی که یک اپرا را اجرا می کند، و هنرمندی که طرحی را ارائه می دهد، همه و همه به یک حافظه فعال، هوشیار، زنده و مطمئن نیاز دارند. بنابراین، قطعاً حافظه در زندگی هر یک از ما نقشی اساسی را بر عهده دارد. متاسفانه تحقیقات اخیر که در جاهای بسیار متنوعی انجام شده است، نشاندهنده این مسئله می باشد که سی تا چهل درصد افرادی که مورد مطالعه قرار اند دچار ضعف و کندی حافظه بوده و برای کوچکترین کمکی که از حافظه خود می گیرند، به فعالیتی سخت و طولانی نیاز دارند و به همین دلیل از حافظه خیش ناراضی هستند به همین دلیل من نوشتن این کتاب را که توصیه هایی نه تنها برای بازیابی بلکه در جهت رشد این استعداد و توانایی با ارزش که متاسفانه در اکثر موارد به خوبی کار نمی کند ارائه می دهد، مفید تشخیص داده و آغاز کردم بیشک مطالعه این کتاب را به تمام افرادی که در زندگی روزمره از حافظه خود شکایت دارند پیشنهاد می کنم. ولی من آن را خصوصا به تعداد بیشماری از محصلین که برای موفقیت در آزمونها باید دارای حافظه قوی انعطاف پذیر و سری باشند و همچنین والدینی که می توانند با استفاده از های این کتاب سهم بیشتری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند هدیه میکنم. من هنرمندان و بازیگرانی را که گاهی اوقات دچار حالت خاصی که به آن فراموشی موقت میگویند میشوند نیز در نظر گرفته ام. یکی از هنرمندان معروف فرانسه به نام میشل سیمون غالبا به این حالت دچار میشد. سوزان فلان نیز در 500 بازی خود در نمایشنامه کلبه کوچک دچار این حالتی شد. و برای آن که او بتواند متن را دوباره به خاطر بیاورد، پرده را پایین آوردند. آندره لوگنیز یک بار هنگامی که در لندن روی صحنه می رفت، ابتدا آن را که می بایست بگوید فراموش کرد، در حالی که آن را قبلا به صورت کامل حفظ کرده بود. او کاملا گفته های خود را فراموش کرد و مجبور شد فردای آن روز این صحنه را دوباره تکرار کند. برای افرادی که دچار حالات فراموشی که گاهی سبک و گاهی عمیق است میشوند و همچنین تمام خوانندگان و محسلینی که مایلند حافظه خود را تقویت کرده و رشد دهند در مرحله اول ماهیت این عملکرد ذهنی و سپس بیماری‌های آن را توضیح داده و امکانات بسیار زیاد آن را تشریح کرده‌ام. پس از آن هایی نیز در رابطه با رژیم غذایی برای شما خواهم داشت. به عبارت دیگر مشخص خواهم کرد کدام یک از مواد غذایی برای حافظه و به طور کلی کار فکری و ذهنی مفید است. ضمناً در ارتباط با این نظریات، من تمرینات تنفسی و یونیزه کردن منفی هوا را که به مقدار قابل ملاحظه‌ای حافظه و تمرکز را تقویت می‌کند، برایتان تشریح خواهم کرد. علاوه بر آن، درمانهای پزشکی حواس پرتی را توضیح داده و در مورد خطر برخی از مخدرها که متاسفانه مصرف آنها چه در فرانسه و چه در خارج از آن روز به روز گسترش بیشتری یابد نظیر آنفتامین ها، باربیتوریکا، کوکائین تریاک، هشیش، ماری جوانا، پیوتل و نیز فصل جداگانه ای خواهیم داشت. پس از بررسی این مسائل یکی از نکات اساسی کتاب به مسئله چگونه میتوان حافظه و توجه را از طریق تمرینات روانشناسی مناسب تقویت کرد اختصاص یافته است. سپس مشخص خواهم کرد که چگونه میتوان زمیر ناخداگاه را در خدمت حافظه به کار گرفت. به دنبال آن چند روش حفظ کردن و بخشی که به آموزش حافظه کودکان اختصاص داده شده مطرح خواهد شد. و بالاخره این کتاب با تشریح یک رشته تمرینات که به نوعی سرگرم کننده بوده و به نحوه ای حافظه را تقویت می کند، به پایان خواهد رسید. در خاتمه این مقدمه اضافه می کنم که تربیت حافظه به خودی خود نیز بیش از آنچه که تصور میشود مفید است. زیرا هنگامی که هر نوع کار ذهنی را تقویت کنیم، در این کتاب حافظه مورد نظر است. سایر اعمال فکری نظیر تمرکز، قوه تشخیص و منطق نیز رشد می‌کند. این امر احتمالاً به این دلیل است که تمام اعمال فکری و ذهنی ما دارای یک روند اولیه مشابه و یک حالت کلی فکر کردن است و در خطوط اصلی غیرقابل تغییر میباشد. به همین دلیل اعمال مختلف روان ما بر اثر تقویت حافظه بهبود یافته و در عین حال گسترده تر و قویتر می شوند فصل اول حافظه چیست بخش اول تعریف حافظه نوعی فعالیت ذهنی است؟ که به ما امکان میدهد حالات خداگاهی از قبیل لذات، دردها، تمایلات، خواستهها، احساسات در یافتهای حسی، اندیشهها و قضاوتها را حفظ کرده و آنها را مجددا در ذهن خویش باز حافظه امکان بازشناسی و مراجعه به گذشته را به ما میدهد. اصطلاحی که مارسل پروست در مورد حافظه به کار می‌برد، این است این مکانیسم به ما اجازه می دهد تا زمان از دست رفته را باز بازیابیم. از حافظه می توان به صور مختلفی که اشکال اصلی آن عبارتند از حافظه بینایی، حافظه شنوایی، حافظه حرکتی، حافظه لامسه، حافظه چشایی و بویایی استفاده کرد. حافظه بینایی رایجترین نوع حافظه بوده و خصوصاً در نقاشان رشد زیادی دارد. این نوع حافظه تصاویری را که میبینیم، اماکنی را که از آنها عبور کرده ایم و صورتهایی را که به آنها برخورد داشته ایم زبط میکند. در یک کلام، این نوع حافظه به ما امکان میدهد تا تمام نکاتی را که از طریق دیدن برای ما مطرح شده اند ضبط کنیم. حافظه بینایی شکلی که خاطرهای ای را ایجاد می کند میبیند، قطعه شعری را که قبلا خوانده شده دوباره تکرار می کند و صفحه ای از نت موسیقی را که شخص از حفظ دارد میخواند. حافظه شنوایی بیشتر در موسیقی دانان رشد کرده و از طریق غالب شدن تصاویر شنوایی عمل می کند. در این نوع حافظه صدای شخصی را که به او فکر می کنیم می شنبیم. هنگامی که یک مکالمه را یادآوری می کنیم، صحبت مخاطب را به خاطر میآوریم و زمانی که می خواهیم درسی را به خاطر بیاوریم صدای خود را می شنویم. حافظه حرکتی حرکاتی را که از طریق عادت به دست آمده اند ضبط می کند. همین حافظه است که انگشتان یک ماشین نویس را، بدون آنکه وی از فکر آگاه خود که در حال شنیدن یا خواندن متنی برای تایپ کردن است کمک بگیرد، هدایت می کند. در این حافظه تصاویر ازولانی که از دست یا گلو سرچشمه می گیرد، جایگزین تصاویر بینایی و یا شنوایی می شود. به همین دلیل برخی از کودکان هنگام که مشق خود را در دفتری می نویسند، دست خود را به کمک می‌گیرند و یا با صدای نیمه بلند گلو می‌خوانند تا بهتر حفظ شوند این گونه افراد افکار خیش را نه می‌بینند و نه بلکه آنها را می‌گویند تصاویری که حفظ شده و باقی میماند، از نوع حرکات تلفظی است حافظه لامسه یاداوری اشسام لمس شده است و می‌توان آن را به حافظه حرکتی متصل نمود این نوع حافظه خصوصاً در میان افراد نابینا که دارای حساسیت بسیار زیادی در رابطه با لمس کردن هستند رشد می کند. و سرانجام حافظه های چشایی و بویایی احساس تعم و بو را در خود حفظ می کنند. این حافظه ها عملاً چنان نقش جنبی را ایفا می کنند که به نظر نمی رسد هیچ کس و یا اساساً دارای قدرت حافظه چشایی یا بویایی باشد. با این وجود، کارشناسان چشایی رستوران‌ها و کارخانه‌های بزرگ تولیدات غذایی عملاً دارای حافظه‌های چشایی قوی هستند. در واقع، سه نوع اصلی حافظه عبارتند از: حافظه بینایی، حافظه شنوایی و حافظه حرکتی. هر یک از ما دارای سه حافظه بینایی، شنوایی و حرکتی هستیم. معمولا یکی از این سه بر دو حافظه دیگر غالب است در عین حال افراد بسیاری نیز یافت می‌شوند که می‌توان آنان را متوسط یا عادی نامید در این نوع افراد هماهنگی مناسبی بین این سه گروه حافظه وجود دارد دانش آموزی که از این گروه افراد باشد در را که دوباره تکرار می‌کند به صورت ذهنی می‌خواند صدای استاد خیش را که این درس را برای وی توضیح داده می شنود و حرکاتی را که برای خواندن یا کپی کردن آن انجام شده به خاطر می آورد. در این شرایط، حافظه ای که روی سه گروه تصاویر بینایی، شنوایی و حرکتی تأکید می کند، حافظه ای قنی و کامل و زنده است. بخش دوم نگهداری و ضبط حواس و افکار عمل اساسی حفظ نگهداری حواس و افکار و به عبارت دیگر زمیر خداگاه جزئی از تعریف حافظه است. این امر از نظر روانشناسی یا ذهنی منجر به اعتقاد یا پذیرش حالت اولیه و حالت سانویه می شود. حالت اولیه همان حالت لذت، درد، احساس دریافت حسی یا فکر است. و حالت ثانویه عبارت از نگاهداری این لذت، درد، احساس، دریافت حسی یا اندیشه به صورت تصویر می باشد. ولی باید این مسئله را متذکر شوم برخلاف آنچه که ممکن است ابتدا تصور شود، نریافت های حسی و تصاویر حفظی از یک جنس هستند. به این معنا که مثلا درک کتابی که من در حال حاضر مقابل خودم دارم، شبیه به شناخت قبلی و کاملا ذهنی است که با بستن چشمهایم از آن خواهم داشت. در واقع تصویر تقریباً همان تأثیراتی را ایجاد می‌کند که دریافت حسی به وجود می‌آورد. هنگامی که این تصویر زنده و قوی باشد، جانشین دریافت حسی واقعی می‌شود. این فرایند در افراد دیوانه یا اشخاص دچار توهم که فریب بینایی یا شنوایی درونی خود را میخورند کاملا قابل مشاهده است و سرانجام با از بین رفتن احساس و دریافتهای حسی بیرونی مثلا در خواب تصاویر در رویا به عنوان واقعیت مطرح می‌شود. از زمانهای قدیم کوشش شده تا مکانیسم روانی ضبط، حفظ و نگهداری تصاویر مشخص شود روانشناسان قدیمی مغز را مانند موم نرمی تصور می کردند و احساس یا اندیشه را به مسابه مهری میدانستند دانستند که نقش خود را بر این موم باقی می گذارد. اما قطعاً این استعاره آمیانهی بیش نیست. همچنین گروهی دیگر تصور می کردند، عصبی دچار تغییرات خاصی می شود که آنها را رد و اثر، آمادگی و یا باقیمانده مانده ها می ولی موفق به مشخص کردن حالت و وضعیت دقیق آنها نشدند. پس از آن محققین بسیاری تصور کردند که مغز از طریق نیروهای الکتریکی هزاران تصویر را در ترکیبات مولکولی ذخیره کرده و این نیروها را با به جریان انداختن در مناطق مغزی مورد نظر به صورت یاداوری مجددا به خاطر آورد با اینکه نقش چنین خودسازی الکتروفیزیولوژیکی برای یک یادآوری لحظه قابل قبول است ولی این تعریف مثلا در زمینه دنبال کردن یک مکالمه در دراز مدت مشکوک به نظر می رسد. در اینجاست که ضرورت حضور و استفاده از مکانیسمی دیگر کاملا مشخص می شود. بخش سوم، نقش RNA یا اسید ریبونوکلئیک. متخصصان اعصاب و فیزیولوژی در سالهای اخیر توجه خود را روی شرایطی که در آنها تحریک یک نورون یا سلول عصبی به سلول دیگر یا به چندین نورون دیگر سرایت می کند، متمرکز کرده و سرانجام به این نتیجه رسیده که از یک سو هدایت جریان عصبی از طریق واسطه‌های شیمیایی، نزیر اسطل کولین، نور آدرینالین و سروتونین انجام می گیرد و از سوی دیگر برخی اسیدهای نوکلئیک نظیر اسید ریبو نکلئیک یا RNA که در سلولهای گلیال یا ساختمانهای نگه دارندی مغز و نخا وجود دارد، نقش مهمی را در عمل حفظ ایفا می کنند. بر حسب تصادف در سیستم عصبی و خصوصاً در آر یک کد مولکولی خاطرات به همان شکلی که اسید دزوکسی ریبونوکلئیک یا دی این ای دارای یک کد ژنتیک است وجود دارد. آزمایش های زیر نشان دهنده احتمالی آر در عمل حفظ کردن است. چند کرم تخت را در یک آکواریوم گذارده و آنها را به دفعات زیر نور یک فلاش قرار می‌دهند. و به دنبال آن یک تخلیه الکتریکی انجام می شود و بر اثر آن کرمها خود را منقبض می سازند. پس از 120 تا 150 بار فلاش زدن و تخلیه الکتریکی کرمها پس از زده شدن فلاش بدون آنکه منتظر تخلیه الکتریکی باشند خود را منقبض می کنند. در این مرحله یک واکنش مشروط ایجاد شده است. به دنبال این مرحله کرمها را چرخ کرده و آنها را به عنوان مواد غذایی به کرمهایی که تاکنون تحت آزمایش قرار نگرفتهاند می خورانند. در این حالت مشاهده می شود که کرم‌های جدید نیز به سرعت واکنش کرم‌های قبلی را کسب می کنند و پس از انجام تعداد کمی آزمایش بدون هیچ تخلیه الکتریکی نسبت به نور فلاش واکنش نشان میدهند. وضعیت طوری است که گویی این کرم‌ها از تجربه آزمایش کرم‌های اولیه برخوردار شده، و واکنش مشروط گروه اول از طریق تغذیه به آنها منتقل شده است پس از این آزمایش این کرمها را نیز مانند کرم قبلی مشروط کرده و آنها را به دو نیمه تقسیم می‌کنند سپس آنها را در آبی که محتوی ریبونوکلئاز یعنی آنزیمی که RNA را از بین می‌برد ریخته و اجازه می‌دهند تا کرم خود را در این آب ترمیم کنند نتیجه به دست آمده را به این صورت میتوان خلاصه کرد. هایی که از نیمه دوم به دست آمده اند، تقریباً به صورت کامل خاطره آن حالت مشروط را از دست میدهند، در حالی که آنهایی که از نیمه سر ایجاد شده اند، هنوز هم به صورت جزئی در حالت مشروط به سر میبرند. این موضوع را میتوان اینطور خلاصه کرد که از طرفی RNA جایگاه حافظه است و از سوی دیگر ریب و نکل آز فقط روی سلول های عصبی که باید خود را ترمیم کنند تأثیر می‌گذارد در حالی که مغز که دست نخورده باقی مانده تحت تأثیر این آنزیم مخرب قرار نمی‌گیرد این حالت بیشک به این دلیل است که آن را جذب نمی‌کند تجربیاتی از این قبیل را روی موش و موشخورما نیز انجام دادهاند و مشاهده شده است که در جوندگان مشروط شده وزن RNA به نحو محسوسی افزایش یافته است ظاهرا این افزایش نشان دهنده مشارکت اسید ریبونوکلئیک در عمل حفظ است. همچنین دیده شده که تزریق پودر مغز موش یا موشخرمایی مشروط به حیوانات آموزش ندیده این امکان را برای آنها به وجود می آورد که از تجربیات گروه اول سود ببرند. موش های خرما معمولا از هر دو دست راست و چپ خود استفاده می کنند ولی هنگامی که کارهای پیچیده‌ای را با دستهای خود انجام می‌دهند در این حالت دستی را که مناسب تر است به کار می برند. از نظر تجربی این امکان وجود دارد که موش را وادار سازیم تا از دستی که خلاف مورد ترجیحی ویست استفاده کند. در این شرایط آر سلولی آن بخش از مغز که به این آموزش مربوط است شدیداً افزایش یابد. مطالعه دیگر در این زمینه روی ماهی‌های قرمز انجام شده است. یک قطعه کوچک ابر که زیر آرواره یکی از این ماهی ها بسته شده، باعث می شود تا حیوان به حالت وارونه قرار گرفته و سرش از آب بیرون بیاید. پس از مدتی ماهی یاد می‌گیرد که به طریق صحیحی شنا کند. در جریان این آزمایش، آر شکل گرفته در مغز ماهی از نوعی است که در مورد موشهای خورما صدق می کرد. البته این RNA در ماهی هایی که به مدت مشابه اما در شرایط طبیعی شنا کرده اند و به عبارت دیگر ابر به آنها متصل نشده به وجود نمیآید. حال اگر ثاره مغزی ماهی های مشروط را به یک ماهی جدید که یک قطعه ابر زیر آرواره او متصل شده بدهیم، این ماهی بدون آنکه به یادگیری این حرکت آکراتی کوچک که به او اجازه می دهد سر خود را در آب فرو ببرد نیاز داشته باشد موفق به شنا کردن به طریقه مناسب می شود. همکنون که این مسائل را مطرح میسازیم هزاران آزمایش مشابه آنچه که تشریح کردیم انجام می شود. ولی علاوه بر این موارد مشاهده شده است اناسری وجود دارند که قادرند رفتارهای خاصی را ایجاد کنند. یکی از این عناصر که به آن اسکوفبین اسکوتوس در زبان یونانی به معنای تاریکی و تردید و فوبوس به معنای ترس و وحشت می باشد. گفته می شود از مغز موشهای خورما که مشروط شده بودند از تاریکی فرار کنند استخراج شده است این ماده را به موشهای خرمای غیر مشروط تزریق کرده و آنها را نیز وادار می سازند تا از تاریکی دوری کنند این عناصر که خالص و سپس ترکیب شده اند در ماهیهای قرمز نیز همین ترس و دوری از تاریکی را به وجود میآورند آنو دیگری نیز وجود دارند که در ارتباط با رنگ‌های نظیر سبز، آبی، قرمز و غیره و یا نسبت به یک صدای مشخص ایجاد واکنش می‌کنند. به این ترتیب زنجیره‌ای تشخیص داده شده که در آن 8 میلیون ترکیب از شش اسید آمینه خاص توآمن برای نگهداری خاطره صدای یک زنگ مشارکت دارند. با بررسی نتایجی که از این آزمایش‌ها به دست آمده است، بعضی از ها از جمله ماریلین فرگوسن این سوال را مطرح ساختند که آیا روزی نخواهد رسید که شخصی بتواند به جای آموزش از طریق درست فقط با خوردن یک گورس زبانهای خارجی یا ریاضیات تخصصی را فرا بگیرد و یا اینکه به گفته هولگر هیدن آیا زمانی نخواهد رسید که برای افسایش کارایی سلولهای مغزی یک نفر مثلا با وارد کردن مواد جنتیک یک فرد دیگر به بدن وی یا فعال ساختن مغز او به وسیله جنهایی که به یک ویروس بدون خطر متصل هستند اقدام شود؟ و سرانجام دکتر ژونشر در ماهنامه سازمان بهداشت جهانی در ژانویه سال 1976 چنین می نویسد. شاید روزی فرا برسد که در تخمک انسان، یک عدد یا یک گروه از ژنهایی که قادر باشند شخصی را با استعدادی در حد عالی به وجود بیاورند قرار داده شود. البته احتمال دارد که با طرح چنین سوالات و براوردهایی از این قبیل وارد زمینه علوم تخیلی شویم و این مسئله شاید در همان حد صحی باشد که آزمایش‌ها نشان داده اند. علاوه بر آن آزمایش از این نوع به وسیله برخی از فیزیولوژیست ها مورد انتقاد قرار گرفته است. بدین ترتیب مشاهده شده، پودر کرم‌هایی که تنها تحت تابش نور قرار گرفته اند و هیچ گونه شوک الکتریکی دریافت نکرده اند قادر است کرم‌هایی که این پودر را مصرف کرده اند، نسبت به نور حساس تر سازند. وضعیت به گونه‌ای پیش می رود که تصور می شود نور ماده محرکهی را تولید می که قادر است کرم‌های مصرف کننده را بدون آنکه هیچ گونه انتقال حافظه‌ای رویشان صورت پذیرفته تحریک کند. پس در این صورت آر ان نقشی را که به آن نسبت می‌دهند ایفا نمی‌کند. تزریق پودر مغز موشهای خرمای غیرمشروط مشروط و عجیب‌تر از آن پودر کبد آنها نیز به نحو محسوسی همان نتایجی را به دست می‌دهد که در صورت تزریق پودر مغز موش های مشروط به وجود می آید. تجارب و آزمایش های دیگری نشان داده اند. نتایجی که از طریق تزریق اصاره های RNA به دست می آید، به خاطر حضور پروتئین‌های های است که همراه با اسید نکلیک است. جورج چاپوتیر از آزمایشگاه جیف سور می گوید، ظاهرا چنین به نظر میرسد که میتوان از طریق عوامل سیستم اعصاب رفتاری را از یک حیوان آموزش دیده به حیوانی که آموزش ندیده است انتقال داد این عوامل قادرند رفتار حیوان دریافت کننده را متغیر سازند البته به نظر میرسد که پپتیدها یعنی همان پروتئین های کوچک مسئول این عمل باشند ولی سوال اساسی که بدون پاسخ مانده این است که چگونه میتوان تأثیر این ها را بر رفتار حیوانات توجیه کرد برخی از پژوهشگران معتقدند که ها به شکل نامشخصی روی رفتار تأثیر گذاشته و قادرند به مقدار زیادی تعداد بسیاری از آموزش‌ها را تسهیل نمایند در این رابطه هورمون‌های خاصی فعال می‌شوند در مقابل گروه دیگری از محققین معتقدند پروتئین‌هایی که این انتقال را انجام می‌دهند بسیار مهمتر از عناصر ساده‌ای هستند که آموزش را تسهیل می‌کنند آنها مولکول‌های حامل اطلاعات دقیقی هستند که در رابطه با رمز حافظه نقش خاصی را ایفا می‌کنند این دقیقا همان چیزی چیزیست که مشاهده شده و همانطور که متذکر شده ام، اناسری نظیر اسکوتوفوبین قادر است رفتارهای خاصی را ایجاد کند. سرف نظر از نقش RNA در به خاطر سفردن یاداور می درمانهایی که در ارتباط با RNA انجام می شود، حافظه بزرگ سالان را به میزان قابل ملاحظهای بهبود میبخشد. این این چیزیست که از نظر علمی نیز آن را خواهیم دید.